دو مزید و ثلاثی قسمت دوم همین درس اول نحوال واضح المجرد و المزید ها رو توضیح داد هم ثلاثی رو و هم ربائی رو الان رسیدیم به ثلاثی مزید در این درس ثلاثی مزید رو توضیح میده سه گروه از همثل رو آورده به خاطر این که یا یک حرف اضافی میشه یا دو حرف یا سه حرف تمام بابها یا یک حرف اضافی دارند یا دوتا یا سه تا در گروه امثله گروه اول یک حرف اضافی دارند در امثله گروه دوم دوتا حرف اضافی و در امثله گروه سوم سه حرف اضافی احسن الصانع عمله در احسن همزه اضافی هست ها و نون حروف اصلی در کرمت شعوب و نابغی ها کرمت را تضعیف هست تکرار شده یکیش اك اضافی هست حاسب السید الخادمه در حاسبه الیف اضافی هست حاو سینوبا اصلی پس احسن باب افعال بود احسن یحسن احسان کرمه یکرمه تکریم حاسب يحاسب محاسبه این ستا باب فقط یک حرف اضافی دارند اگر بخواییم تشخیص میدیم در احسنه کدوم حرف اضافی ها زیر افعالهش میدوسیم اونی که زیر فا و عین و اصلیه اونی که زیرش نیست اصلی نیست افعل احسنه خب حمزه دیگه شد اضافی در فاعله حاسبه در فاعله فا لام فا عین و الف اضافیه در حاسبه پس شد الف اضافی. تمام فیل های سلاسی مزید به این طریق راحت شناخته می شوند امثلی گروه دوم دو همزه و دون اضافیان باب انفعال هست ان فایو علیه نولان اصلی همزه و دون در ابتدا اضافی در اشتماله همزه و تا اضافیان شینو وب و لاب اصلی اشتمال روی ال افتعل به همزه و تا اضافی میمونند اصفره همزه اضافی است به اضافه تضیف را را تجدید دارد یکیش اضافی است تبارت طلبته فی العدو در تبار تفاعه تفاعل و تفاعل در تفاالت تو و الف اضافی پس در تبار تا به اضافه اضافی هستند. تقدم فنوتایران در تقدم تفعاله تا به اضافه یکی از دوتا دال تضيف دال اضافیه. پس در این پنج باب انفعال، افتعال، افعال، تفعول و دو دوتا حرف اضافی داریم. اما امشله گروه دوم از در استعلامه حمزه و سیل تا در ابتدا اضافیان در احلولا حمزه وا و تضیف منظور تضیف لام هست که دو تا لام داریم تضیف دو تا حرف همجه سیلوک در کلمه باشن و در اجلوزه همزه واب و تضعیف تضعیف کدوم هست در اجل وزه دیگه واب دوتا هستند پس یکی از دوتا واب ها در اخبار ره حمزه اضافی است. الیف و تضعیف منظور است تضعیف اون حرفی که دو تا حرف همجن در یک کلمه باشد دو تا را دو تا واب دو تا دال مده مضاعفه چرا دو تا دال داره مرد دو تا را داره تزعیفه مضاعفه القاعده بیاییم روی قواعد مزید سلاسی انواعون ثلاثه سلاسی مزید رو هست الف مزید به حرف اونی که یک حرف اضافه دارد هو اون حرف اضافی چه هستن؟ الحمزت حمزه اون بابایی که یک حرف اضافی دارد باب افعال هست احسنه حمزه اضافی است. اول تضعیف یا تضعیف کرمه را اول الف یا حرف الف اضافی است. مالند حاسبه که الف هست پس اون سلاسی مزیدی که فقط یک حرف اضافی داشت و حرفای اضافی چی بودند همزه تضعیف و یا علف. اما مزیدون به حرفه اون باب که مزید به دو حرف هستند دو تا حرف اضافی دارند هما اون حرفها چی هستند الهمزه و نون یا همزه و نون هستند مانند ان صرفه که همزه و نون درش اضافی هستند او یا همزه و تا با هم درش اضافی هستند مانند اشتمل افتعله که همزه و تا درش اضافی هستن. او الهمزه تو تضیف یا همزة و تضیف درش اضافی هستن. معنی ده اسفرا، احمره، ابیابا که همزه و تضیف اضافی هست. او تا و الف یا تا و الف درش اضافی هستن. معنی تباره یا تقاربه. تبارا متل هست تقاربه دو حرف داره تبارا دوتا تا داره تا الیف یا او تو و تذ یا تا و تذیف اضافی هستند مانند تقدمه که درش تا و تذیف که دال هست اضافی هستند پس الیف با الاف و بارو توضیح دادیم الیف یک حرف اضافی اون حرف اضافی چی میتونست بشه همزه یا تزیف یا علف قسمت با مزید به دو حرف که اون دو حرف و اونون بودن یا همزة و تا یا همزه و تزیف یا تا و علف یا تا و تزیف ها مزید به سلافت احرف سلاسی مزیدی که سه حرف اضافی دارد اون سه حرف اضافی چی میتونن باشن هی علهمزة و سین و تا همزة و سین و تا دار استفعل مانند استعلم حمزه و سي و تا اضافيان او الهمزه والواو زائده الضعفه بس يا حمزه و سي يا او الهمزه والواو والتذئيف يا حمزه و واو وتذويف لولا همزه درش اضافی است واو درش اضافی است احلاولا واویک در احلاولا هست و تضعیف که همون لام هست دو تا لام داریم دیگه احلاولا تضعیف تضعیف به دو حرف همجنس میگن پس اونی که سه حرف اضافی میتونه داشته باشه اون سه حرف اضافی یا همزه و سیل تا که در اس تخدمه وجود دارن با استفاده یا هم واف تضعیف احلولا یا هم و واف زائده المضعفه یا هم زو واف زائد و واف مضاعف مانند ادلا که در ادله وزه همزة اضافی هست و زائد اضافی هست و وابع تضیف. او الهمزة و الالف یا حمزه و علف و تضعیف مانند اخباره اخباره در اخباره حمزه اضافی هست علف هم اضافی هست و تضعیف که یکی از دو حرف را پس سلاسی مزید بر سنو هست اون سلاسی مزیدی که یک حرف اضافه دارد باب بودن اون سلاسی مزیدی که دو تا حرف اضافی دارد پنج باب بودند و اون سلاسی مزیدی که سه حرف اضافی دارند که چار تا بودند این شد از بحث سلاسی مزید